لال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مسلمانان محترم درس امروز ما شما درباره مسئولیت جوانان و در قبال پیروی از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت اختیار همسر و در مراسم عروسی و دیگر مراسمی که مربوط به ازدواجشان میشن یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است برای جوان های ما. او است که هر جوان مسلمان و هر پدر مسلمان و هر برادر مسلمان وقتی درباره مسئله ازدواج بکر میکنند. اینا باید بدانند که عمل انسان و حرکت انسان، وقت مورد قبول خداوند قرار می و وقت در کار انسان برکت انداخته میشه وقتی که خود یک مسلمان ای عمل خدا مطابق طریقه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بسازه در دفت امروزی ما شما می بینیم که خداوند متعال جل جلجاله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این قسمت های داره که هر جوان باید این ای را بفامه تا در اختیار همسر خود و در زندگی بعد از آروسی خود ازو برنامه درست و اسلامی داشته باشه اول خواهیت شریف است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجل لتسكنوا إليها و بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم سورة روم آيات 202 أز علامات قدرة خدواند مطال جل جل لهو يكي هم انخلق لکم من انفوسیکم از واجم که خداوند خلق کرده از نفس شما یعنی از واج شما را هم از جنس خودتان پیدا کرده لتسکنو الیها تا در کنار آنان بیارامید و جعل بینکم بودتان و رحمة. و خداوند متعال گردانیده در بین شما مهر و محبت را ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون در این علاماتی است از قدرت خداوند برای کسانی که فکر میکنند بنا خداوند متعال جل جلاله برای انسان ها مرد باشه یا زن باشه همسر از اینا از جنس خودشان اختیار کرده و اساس و بنای زندگی شریکی را به اساس مودت و رحمت به اساس محبت و سمیمیت گذاشته که همیشه خانم با شوهر خود و شوهر با خانم خود با احترام دوستی و محبت زندگی بکنند خب آل جوانای مسلمان ما که همیشه علاقه من هستن که در هر چیز حکم خداوند سر خود تدبیق بکنن. اینجا هم فکر میکنه که من در وقت امسر اختیار همسر خود چی باید بکنم؟ و ارشادات دین داری قسمت چی هست؟ اول ارشاد دین است که خداوند متعال جل جلو همه که الطیبات تایبات و لطایبین و للخبیسین از یایت شریف آدم اتو درس میگیره که خداوند مطالبه که زنهای پاک نصیب میشه برای مردهای پاک و مردهای پاک نصیب میشن برای زنهای پاک پس اینجا اگر کس میخواه که در زندگی نصیب عزیزی زن پاک شونن همسرش پاک باشه پس این اول باید از خود شروع بکنم یعنی خودش باید پاک باشه چرا که حکم خداوند است زناکار زنا نمی‌کنه در آیت شریف میگه مگر زناکاره انسان پاک نصیب انسان پاک میشن و انسان خبیس نصیب انسان خبیس میشه کند همجنس با همجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز از این خاطر از مکافات عمل غافل مباش یا غافل ما گندم از گندم بروید جوز جو وقتی که یک کس میخا که مرد در آینده همسر پاک نصیبی بشوَم، این آیته قرآن در نظر داشته باشه که ابطایبات وللطیبین. پس زن پاک نصیب مرد پاک میشه. گفتند یاب می نشود، جستع ما، گفت آن که یاب می نشود آن است. اینا رو بسیاری کسایی که میگه من مثلا همسر پاک نمیافم. اگر روز کسی اعتراض یا گفت ساد در این شرایط داری زمانه ما از کجا بکنیم؟ فامیل پاک، مادر و پدر متدین و از کجا پایدا بکنیم؟ او دختر پاک تا ما ازدواج بکنیم؟ مفتون بردر عزیز این مشکل تو هست که کت مردم های پاک سر و کار نداری. اگر تو با انسانهای پاک سر و کار می داشتی به هزار فامیل خوب متدهین و با ایمان میشن می ما در یک مجلس اشتا بودیم پدر دختر برای پدر بچه همه که از خدا بترس عشق و عارسی دختر منه در هوتن نکنی که اونجا سازنده و رقاصه بگه پا باشه. پدر دختر بر پدر بچه میگن کس خدا بترس ای کار نکن من تقاضایم از تو هست ای از چی میشه قنصان پاک است دختر من اینه بر تنکا میتون توی تویانا از پشت نمیگیرم دگه چیزها رو بر تاین نمیکنم ولی از پشت خواهش می کنم که در آروسی از منکرات و گناه ها و این چیزها اجتراب بکن پس تو فامیلای پاک ما بچه شما خود دیدیم هست و و و و از این خاطر انسان که پاک است خدا نصیبش همسر پاک هم میکنه و اگر خودش کسیف است گناهگار است بیدین است پس او نصیبش اونموت انسان کسیف و گناهگار و خبیس بشن از این خاطر انسان در اینجا باید اول از خود, خود اصلا بکنه اگر انسان نمازخان است متدین است سطر و حجاب خوش داره تقوار خوش داره ایمان خوش داره حتما خداوند متعال جل جلوهو نصیب ازی، اما انسان رو میکنه که این خوش داره این نمال به نیات یعنی در اساس هر چیز هر عمل انسان به اساس نیتش است و خداوند متعال مطابق نیت انسان برش میرسانه خب اینال وقتی که ما اول درس ایست که نقطه اولی که اگر ما میخواهیم که در آینده خود زندگی شرافتمندانه و اسلامی و با ایمان داشته باشیم اول خود و فامیل خوده خود و فامیل خوده باید در اصلاحش کار بکنیم تا اینکه خداوند نصیب ما فامیل دگر بکنه که اونا متدین و با ایمان هستن و همسر نصیب انسان بکنه که اونا متدین و با ایمان هستن چرا پیغمبر صلی اللہ وسلم میگه از دنیا متا دنیا به منزله یک چیز زیبا و متا هست که انسان از او لذت میبره از او حض میبره یک دقیقه دنیا برای انسان هزارها سال مساوی به هزار سال آخرت است. یک دقیقه دنیا چرا وقتی که یک دفعه گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هزار ساله زندگی آخرت تو خوب میشن یک یعنی نفر هفتاد سال کفر است باز 70 سال خداوند هدایتش میکنه یک دفعه در یک لحظه لا اله الا الله محمد رسول الله و هفتاد سال کفرش تمیشه و به خداوند زندگی ابدی و خاطر یک دتی دنیا این متای بسیار با ارزش است اگر دست ارزش شبه فرمه و خیر متایها پیغم برسی سلام میگه این بسیار درس بزرگ است و بهترین متای دنیا بهترین چیزی با ارزش دنیا چیست؟ المرعت الصالحه. زن با ایمان است زن متدین است چرا مرد که زنش به است به ایمان است به نماز است در هتل و در آروسی حجاب خود همراوات نمی کنه. که مردای نا محرم دست میتاوه کت مردای نا محرم اختلاط میکنه و ترا میشینه. این خود تنها خدا به دوزخ نمی پس شوهر خدا هم کت خود به دوزخ میبره. پدر خدا هم کت خود به دوزخ میبره. برادر خود هم کت خود به دوزخ میبره و برادر پسر خود هم کت خود به دوزخ میبره. عزی خاطر بهترین متاعی که در دنیا که این متا و این چیز با ارزش دنیا که است اونمو چیزی ارزشمند دنیا زن نیکو کاری هست که شوهر خود از عذاب دوزخ و سبب میشه که زن مسلمان است که برای شوهر خود نصیحت میکنه که از خدا بترس سون زنای محرم سر نکن از خدا بترس به جماعت بخون سر صدا میکنن از خدا بترس ایگونا گونا را نکو. از خدا بترس مکالا کار ندارم زنای هست مسلمان ما. ما زنهای مسلمان با تقوا داریم هزار 2007 که برای شوهر خود میگه که از خدا بترس اشکو بر از پائسه جشوت و حرام لباس نبریم از خدا بترس من که چالو میخورم برام گوشت گوشت و کباب و خوراک های زیاد از پیسی حلال نبر حرام نبر ازی خاطر اتوزن های متدعی را با ایمان ما بسیار داریم انالو وقتی که همسر انتخاب میکنیم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام چی میگن میگه تون که حل مرعه اربعین مردم به نگاه میگیرن خانم های غالبا برای چار علت این چار علت است لمالها لها بعضی ها اختیار میکنه همسر به خاطر که همسرش پولدار است که من از خانه ازی پولدار ایره بگیرم شاید یگان چیز از خصول خیلی برمان بچکن خاطر مالداریش و بعضی ها اختیار میکنه همسر خدا لحسبه ها به خاطر این که میگه بسیار از خاندان شریف است و حساب و نحصب دارن. و بعض طایفه سه اون که اصلا اینا اختیار میکنن امسر خدا لجمال ها. خاطر از میگه که بسیار دختر مقبول است و زیبا هست و چی است؟ خاطر زیبایش. و یا هم برعکس ولدین ها. ولی تایفی چارمی که هستن اختیار می کنن همسر خدا خاطر دیانتش، ایمانش، تقوایش. و پیغمبر سلام بر جوانا چی خطاب می میگه ای جوانا، ای جوان فضفر به ذات دینه تو سیاتر کوشش بکن که همسرت به اساس ایمان و تقوی و دینداری اختیار بکنیم دست های یک چی است که پیغم بستان میک یعنی خداوند تا را خوشبخت بسازه خداوند تا را نیکبخت بسازه یک اصطلاح عربی است دست هایی از این خاطر توصیه پیغم مثلا این است که وقت که شما ازدواج میکنین در وقت که پیش از این نامزاد شوین و اختیار, اختیار میکنین همسر آینده تانه کوشش بکنین به خاطر چی اختیار بکنین به خاطر دینش پشت مال عصب و جمالش نگردین اساس دینداری را قرار بدین اگر دیگه صفات دیگه را هم داشت خوب اما اساسش باید دیندار باشه ولو که دختر بسیار زیبا باشه بیدین دین باشه امرایز چرا خود تار ازدواج خود تار ازدواج که است یک تار بسیار نازک است که تا... به اساس تا... تا... ارتباط عمیق تار خامس که نامش اعتماد است و اعتماد انسان تا وقتی می داشته باشه سر خانم خود که او خانمش متدین باشه اگر متدین نبود این اعتماد از بین می از ازی خاطر وقتی که در محاکم برین از قاضی صاحبا پرسان کنین قاضی که در محکمه فامیلی هستن اکثریت طلاق ها و بدبختی ها و لط و جنجال و کشتن و قتل یپاک در بین فامیلی ها روخ علت علت اساسیشی است که خانم سر شوهر به اعتماد میباشه و شوهر سر خانم خود به اعتماد میشه و این به اعتمادی رو چی میره؟ به ایمانی میره یا دختر بی‌دین است در خانه پدر خود به ایمان تربیت شده چه قسم کاتو نامحرم نسبت کاتما نامحرم خنده کو کاتو نامحرم گپ بزنه پیش حیات نامحرم استاچو قردنده بشه بگی و, و این وقتی که این خانه شوهر است شوهرش سر این گپ‌ها حساب میکنه حساب کی ک خب تو درو پیش حیات چرا رفتار بودی حیات مرد تو کاتفلانی نامحرم چرا حساب شده کاتفلانی چرا به تلفن ناقه گاز دادی و این بی‌تفاوت است وقتی که این بی‌دین است از دین خبر نداره احکام خدا را خبر نداره از این خاطر شوهرش اشتباه میکنه. تنك بالا این خط این خیال که کات ارتباط دارن این کسی کس کد تلفنگ گذاشتی اینو محرم که تو ارتباط داره این کات فلانی نفر که رفتید دز زادی کات ذی ارتباط داره کات فلانی رفتید از اتاق تناشیش چی که ارتباط نامشروع داری از مشروع نامشروع داری از این خاطر برش مشکل پایین ده پیدا میشه مشکل پیدا میشه و حتی بسیاری دخ... از که وقتی که ازدواج میکنن با امراه یک دختر بر اساس احساسات چه قسم ازدواج میکنن؟ او دختر مثلا یاداری سرک میبینه یادا اوتل میبینه یادا مکتف میبینه یادا فانتون میبینه یادا روی سرک میره از اون میرسه با آیس کریم برو بالا برو چکر بزن آدیسه طلاق آمد چی گفت؟ جنجال هست و زدن هکست و کرد، هکست بلاخره وقتی که علت چه پرسان میکنی؟ میگه شواره ما از پیش ما پرسان میکنم بعد از ازدواج خب ای خوی عاشقت بود ای خود رو بسیار دوست داشت خب بسیار کتو سبیمیت داشت حال شده در اول ماه اول اصل ماه دو مرچ و ترشی و سلاته شروع شده یه از کجا شروع شد؟ میگه از شروع شد که من وقتی که خانومش میگه که چرا؟ میگه والا ایشا و آره ما مرا پرسان میکنه که خو امروز که تو کت معدس بعدش رفتی چکر زدی، آیسکریم خوردی خوردی، تفاوت بودی، قبل از مکت چند نفر گذشته بودی؟ سر از به اعتماد شد. از این خاطر او گرقدر بش قسم قرآن میخوره میگه نه نه نه نه قسم تو هم قرآن تو هم غلط از به خاطر از تو چودو که من تو خیلی نورمال، من بیگانه نبودم؟ ما مرد نبودم چه تو کتر من نورمال گشتی و حتی من قبل از ما هم تو گشته بودی عادت داشت از خاطر به تفاوت بودی که ما برفتی در خیر از چرا که یک مرد نامحرم میگدی اینه میجه بود که به اعتمادی پیدا میشه و مای دوم و سیوم جنگ است و زدنک است و بلاخره گر به محکمه و به طلاق و به جنجال و تباهی میرسه از این خاطر انسان مسلمان دختر باشه یا پسر باشه در آغاز اختیار نامزات خود باید از چی استفاده بکنن؟ از دین ویت وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و در حدیث شریف یه حدیث شریف نمبر جلد اول صفحه 572 امن ماجم تونکه خلمر اطول اربعین لیمالی ها ولی حسابی ها ولی جمالی ها ولی دینی ها فففر به دین تربتی داد در حدیث دیگه پیغمبر صلی علیه و علیه وسلم امین چیز میکنه که من تزوجه ببینین اینجا پیغمبر صلی اللہ علیه و اینجا نکوهش میکنه بدگوی میکنه که رو بعد مگه میگه من تزوجم راعتن لعزها لم یزده الله الا ظلم اگر کسی به امراه یک کسی ازدواج میکنه به امراه یک دختری به خاطر از او که بسیار از فامیل مشهور است و شهرت داره و چیست خداوند به خاطر از ای که ای را عزت در نظر گرفته خداوند مسیب از ای میکنه و من تزوجه ها ها اگر کسی ازدواج بکنه به امراه یک خانم به خاطر پولش لم یزیده الله الا فقرن خداوند بر ازیش زیادنم مگر کی به خاطر پولش ایرو گرفت خداوند تیر فقیر می‌سازد و من تزوجها لحسابها لم یزده الله الا دناته اگر کسی به خاطر حسب و نسبش بر ازدواج کرد خداوند بر خوری و دناءت و پستی رو نصیبش می و من تزوج امراهه لم یرید بها الا ان یغض بصره ویحسن فرجه او یصل رحمه بارک الله له فيها و بارک و بارک لها فیه اگر کسی ازدواج میکنه با امرای یک کسی به خاطر چشم بوشی میگم من والا ازدواج میکنم همراه فلان کس اول که باید خودم باید عفیف پاک باشم از چشمم پاک شوم و اعضای بدن پاک باشم و رحم باشه و ما فامیل خوب تشکیل بدم فامیل متدین باشم از این خاطر با یک دختر و یا کسی اختیار میکنه که اون متدین است و با ایمان است اینجا میگه خداوند متعال جل جلاله جل به او برکت میبرد هم در خانمش و بر خانمش برکت میبرد اینه تو شوهر که باعث اساس دیانت اینا با هم یک جایشند. و ببیش، ببی این لات است که حتی بر پدرها، بر پدرها پیغمبر صلی الله علیه و آله وصیت میکنه که ادایا اگر منتر داو ندینه و خلق او فزوججوها، این لات افعلو فتنه فی الأرض و فساد کبیر. پیغمبر صلی الله علیه و آله بر پدران حسیت میکنه که اگر یک کسی پیش شما میآید که شما از دیانت و اخلاق حضور رضایت دارین پس شما باید اونا را با مشوره دختراه ای این عقد ازدواج بپذیرین به خاطر مسارف و پولای اضافگی پشت از او نگردین چرا؟ اگر این کار را نکنین الا و تکن و فت... اینجا باز یک فتنه در زمین پیدا میشه بدبختی پیدا میشه و افساد بسیار بزرگ پیدا میشه زنا زیاد انتشار پیدا میکنن دخترگوریزی و اینگپا زیاد پیدا میشه و جنایت ها زیاد میشه و در اینجا پدر... پدرها بر این قسمت مسئولیت پیدا میکنن کنن حدیث نمبر جل... جلد یک پینسد و صفیه پینسد افتاد دوی ماجه خب پنال انسان وقتی که اختیار میکنه دختر با ایمانه و یا دختر با ایمان یک پسر با ایمانه پیدا میکنه اول باید از خانواده از پرسال میکنه از خانواده با دیانت باشه پدر که نمازخوان است اولاد خود حتما به نماز دعوت میکنه پدر که با تقواست حتما اولاد خودت به تقوا دعوت میکنه اما یک خانه که در بین فامیلش نه حجاب نیست سطر نیست با حیایی نیست و ترس خدا نیست و نماز نیست این در بین دختری که کلان شده حتما او هم خوی از اینا. را گرفتند بوابدان که که بدمانی خوب پذیر است نفس انسانی پسر نوح بوابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد از این خاطر وقتی که پسر نوح که چیز چه پدر خدا را ترک کرد رفت با مردمای گمراشش خاندان نبوتش گم شد وقتی که خداوند بر خداوند نوح علیه سلام گفت که او از اهل من خداوند نازل گفت که انه لیس من اهلک و اهل تنیس به خاطر زو که او بیدین و کافر است و بنی علت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که تخیرو لنطافکم وانکحول اکفا شما برای نطفه هایتان جای مناسب و پاکر اختیار بکنین و مردم های که با ایمان با تقوام با صداقت باشن از خاطر شما باید چرا؟ حتی حق طفلت از اینجا تو که وقتی که تو ازدواج میکنیم طفلت سردو حق داره که باید برازو مادر پاک مادر شریف مادر با عزت فیدا بکنیم و عظمی از ام امی علت هست که وقتی که مرد با تقوا باشد، از طایبات طایبین اینجا یک قصر علموان ذکر بکنن چه قسم زنهای پاک نصیب مردهای پاک میشن میگن که یک وقت حضرت ثابت رضی الله تعالی که پدر حضرت امام ابو حنیفه نامان بود این حضرت صحابت جوان بود ثابت ابن زوتی بچه جوان بود ولی بسیار با تقویم یک روز در پالو در یک جوی پالو جوی وضو میکرد یا می رو وضو کردن میگن در آب در جوی یک در سیب حضرت ثابت می‌سی گرفت دید که بسیار سیب خوب چیز، یک چهار دوش یک سه خوردم با اجلا، لکنی سیب از کی باشه؟ آیا جایزه سیانه جایزه است؟ اساعه شیر بر ما یا نبکشه؟ فورا حرکت کرد، سر سر جو گرفت گرفت رفت که آیا واقعا نزد بسیار زیاد است؟ داخل شد دید که باوان دیشته آدم شش سلام علیکم ما اگه اشتباه کردیم چی اشتباه کردیم؟ گفت امیسیبه سیب آورت من گرفتم خوردم و پس هم متوجه شدم که امی نصف سیب که خوردیم آله متوجه شدم که امیسیبه از شماست آله این سر و جوه گرفتم مآمدم در این باغتان امیسیبه تبرمه میبخشی؟ اگف نی می نمیبخشم چرا خوردیم؟ گفت خیلی قیمت شد بگو؟ گفت نمیخوایم قی خیلیست خوالمی قیمت هم یک دانسته بس قیمت یک چارک بست میتونم چارک چند است افتاد میره بست میتونم گفت نمیگیرم قیمت خب قیمت یک سیرش بست میتونم گفت نمیگیرم گفت خیلی پدر جان اللہ مخو خداوند است و تو چی قسم مرا میبخشیم گفت یک شرط دار میبخشم اگر اونو شرط مرا قبول کنی ميتم. درست هستن نکردی قبول نمی چی شرط داری؟ گفت شرط ما اینمی هست به ای شرط ما میبخشم از این چیز که من یک دختر دارم که کورام است کلام هست شلام هست شتام است. گونگه هم هست اینمی دختر ما اگر میخوایی تو جوان هستی نکاح کردی نی گفتن نگفت اگر میخوایی نمیده به نکاحی بگیری میبخشم تا نمی نمیکنی نمی خویشیت، سیزدیش، خیج... برغم فکر بگو که با صو بیا. که خاطک شورا، پیش خود فکر کرد که خو. اگر من با یک کله کور و گنگ و شلش تزواج بکنم، کل زندگی ما الان از 30 سال، 40 سال، پیجا سال عمر داره کل جخواری و بدبختی تل میشه. مجبور از این من بیارم. مجبور اون بر بیارم این بیارم. نگاپمش نبا، نگب گفتم میتونم. شلش تو باز واسه پسون که فکر کرد که خو. اگر اینمی سیف سبب رفتن ما در دوزخ شدم با دوزخ خوبی سخت است آسانترین عذاب دوزخ است که مگه برای دوزخی یک بود های آتیشی پوشان نمیشن بوده که وقتی که پوشید مغز سرش جوش میخورن عزیخات و مسلمان ما شما دوام میگیم که خداوند متعال جل جلاله ما رو از یک ثانیه در قبر در عذاب دوزخ را هم نجات بده امین, آمین. یک دقیقش یک ثانیه شده ما واسانطاری نزار تو ما رو نجات بده یکی مثلا عذاب کلاری که مثلا چند روز و چند ماه و تا باشه چه چیز دیگه ده یک اما سانطاری که مغز سر انسان بجوشه. این وقتی کی یومت که برادر گمشک از عذاب دوزخ سخت است بیا امین 20 سال 3 سال 40 سال زحمت و مشکله متحمل میشد. آمد پرزی گفت که خب پادشان پس نگشتی است گفت نه نگشتی. ها؟ اگه پتیگ بیشتر سیب و قابل اکسید گفت نه نه قبول نمیکنم. چرا به خوردی نمیخوردیم. خب دید که چرا همش رفت خلاص قبول کرد رفت اینجا پاملشون اومده که او پنت مشکل هست. ایرسد بره چند نفر برو شیشانو در مسجد نکای زیر و عروس تسلیمش کرد این وقتی که شب میشن اشبه شب نوبای شب میره که عروس خود رو ببینه داخل رو داخل میشن ببینه که یک دختر جوان زیبا ششتر پس نبرایه وی در رو دور میتوش لا حول ولا قوات الا بالله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم شما کی هستید؟ ماش میگه که ما خانه متأسف میگه پدر تو بر من تو بیا پیش بیا پدرم دیگه چیز میخواست بگه چی میخواست پدرت بگه میگه پدرم من هدفش مادی نبود هدفش معنوی است ماشال به خاطر عزیزم که در زندگی با و رو کوچه و بازار بدون زیارت نغ راوده کور به خاطر که در زندگی نامحرم چشم مرا ندیدند شال به خاطر عزیزتم که به زندگی بدون ضرورت و جاهایی که لیلامی فروشی اگه آنطا زنها که بکار کارمان سر میره لیلامی خوش میکنه. شوارش قرار شیشته شوارش قرار در خانه شیشته خانمش میره برش سر نان از نانبایی میره بچه جوانش قرار تلویزون سرداره مادرش رفته در نانبایی کت نانبایی قصه داره ایک کلش نارواز ناجائز است ایک کار غلط است بلاخره صاحب و گل گفت من به خاطر ازی گفتن که نابینا هستم که چشم هیچ وقت ما چشم من در مقابل یک یک, یک نامحرم سلی نکردی مثلی که کور باش و کار به خاطر ازی هستم که من هیچ وقتی صدای نامحرم گوش ندادیم و گنگه به خاطر ازی هستم که هیچ وقت ما با مرد نامحرمی هم صحبت نشدیم جس که امام ثابت رحمت الله علیهی میگه که با شنیدن یک با امتحان که خداوند مرا کرده بود بسیار میگه گریه کردم وضو کردم من هم و ای خانم ما گفتم تو هم بخی وضو بکو یا وضو کرد آمدیم نماز خواندیم. شکر،, شکر کردیم با گفت پدر من مردم های زیاد می آمدن پیش من ولی پدرم ما نمیشد ماماده نمیشون بالاخره آدم کف که با می تخواه بود پدر گفت این یک جوان با تخواه را پیدا کردیم لیاقت تو را داره از این خاطر پدرم بر تو مرد داد از این خاطر میگه ما تا نسبای شو به عبادت و به توبه و به شکل خداوند وقتی که ای دو خانم و شوهر با هم یک جای میشه حضرت ثابت امنی زودی از ات مادر مادر بادتقوان و از ات پسر پدر بادتقوان کی پیدا میشه؟ پسری که نعمان ابن ثابت است عالمی بسیار بزرگ. این حالا اگر کس میخواهی که مثل امام و حسن و امام و حسین وارود بچه داشته باشه باید مثل فاطمه و حضرت علی کرم الله و باید اون مادر پدر داشته باشه اگر کس میخواد که ما و شما یک که سیدی رو میبینیم که یک بچه که چهار ساله در ایران مکمل قرآن حفظ کرده و قرآن ترجمهش هم میفهمه و حتی خودش دیکشنری قرآن از وقتی که هر کلمه قرآن رو میگه بره میگه در فلان صفحه در فلان یای در دیدیم نه اینا الیزیوری که سو فکر خدا سونه, سونه, سونه بچه بچه‌گاک میکنه من گفتم نه اینجا باید من از طرف بچه فکر نکنم چی کرد چه قسم مادر و پدر داشت که تو اولاد به دنیا آمد؟ وقتی که پرسان کنیم مادرش هم حافظ قران است و پدرش هم حافظ قران است خب وقتی که دو قرآن یک جای شد اولادشان هم مکمل قرآن است دکشتردی قرآن جور میشم پس ایناله وقتی که اولاد یک نفر دو میزنه دشنام میزنه کفر میگه میره پیش بطه دست خودی قسمی میکنه اواز که بگه یا الله میره پیش بطه و بر بطه تو مثل وندو آوره میکنه خوی مادر پدرش وندو پرست است مادر پدرش این خدا رو برش معرفی نکرده قرآن معرفی نکرده اون دو برش معرفی کنه که اینی بطه برو پیش بطه سجده کن. پس وقتی که طفل بی و بی ایمان است از دست مادر پدر است از این خاطر اینجا هست که انسان مسلمان حتی در اختیار اولاد خود وقتی که میبینم ای حق چیستن؟ از این خاطر میگه شخصی از عذرت عمر را دلاتانون کرد کد که حق فرزند بر پدرش چیست؟ فرمود حقش این است که اول مادر خوبی براش انتخاب بکنه حق اولاد اگر تو میخوای که اولاد در آینده بر تو احترام بکنه و بر تو ازد بکنه و تر شخصیت بته از این خاطر باید بر اولاد خود مادر پاک با تقویر اختیار بکنی اگر مادر خراب اختیار کردی در حقیقت خودت برای آینده خود و برای اشتفیری خود ظلم کردی باز اولادت اترامتا نمیکنه حقی اول اولادی است که باید مادر خوبش انتخاب بکنم حق دور میشه است که باید نام خوب برشید کنه و حقی سیویش که باید تعلیم علمی و بخصوص اول قرآن از امشانه زیاد بتن یه حق اولاد است از یه خاطر وقتی که مادر خوب باشه مادر برای اولاد خود تعلیم و تربیت میده چرا که اول گپ و اول چیزها را اولاد است که یاد میگیره از مادر یاد میگیره کتر پدر خود اگر دو سات سو باشه دو سات شام باشه کتر مادر خود بیست و چار است و شخصیت مادرش و شخصیت اولادش اتمن تبارس میکنه به این شکل است که انسان اول باید کوشش بکنه که. در قسمت اولاد بسیار متوجه باشد این اکشار چی میگه: مگه کودک هر آن چی دارد از آغوش مادر است گرزشت باشد او اگر نیک اختر است خوبی که از نخست کسی را به سر نشست او را همارا تا بدم مرک بر سر است در دفتر معلم و آز... آموزگار نیست آن تربیت که زاده دامان مادر است در دفتر معلم و آموزگار نیست در... نه کتاب معلم نیست چیزی یا میشن و نه کتاب آموزگار چی یاتوندمشم؟ آن تربیت که زاده دامان مادر است. وقتی که مادر یک را درست تربیت کرد از این خاطر باز او تربیت درست میشه اگر اینکه مادر تربیت منفی و غلط برازی کرد این در بالاخره در قسمت اختیار چیز... همسر بسیار ضرور است که انسان بر اولاد خود مادر پاک و بادیانه تا که اولاد پاک و خوب به دنیا بیره اینال وقتی که نامزاد میشن برادرای عزیز اینجا جوان مسلمان وقتی که نامزاد خود اختیار کرد در اسلام خوری نیست اسلام چیز رو بنامه چلعالش کدر نمیشناسه در اسلام خدبه است خدبه میگن با کسر خیف خدبه خواستگاری از یک نامزات خطیب میگن و نامزاتش که معنیس از او را خطیبه میگن در عربی این ها خطبه هست که میره با وجه خطبه و طریق شرایش اینمی هست که باید دختر پسر را ببینه و پسر دختر را ببینه یک صحابی مبارک ازدواج کرده بود پیغم برسلام پرسان شد گفت که گفت که ازدواج کردیم گفت دیری خانمتا گفت نی نری دیری نامزاد گفت نی گفت بی بی فا اینه فی اعیون ده چیش مس یاره و چیش بعضیام میگن که یا آبی مایشونیا بود یا چیش یا قسم تانگراکام بودیا چطور بود؟ از این خاطر گفت که بعضی مردان کریش خوشش نمیاد پس از این خاطر پیش ازی که در وقت که اینجا باید در حضور دیگرها از نگاه شریعت که باید همسر خدا ببینه و باز بعد از اردو یکی دیگه خدا وقتی که دیدن بعضی کسها با اساس رواجای قبیلهایی که ضد دین است هیچ نمیمونه. او حکم پیغمبرام قبول نمیکنه که نه حکم خدا قبول نمیکنن و بعضی کساس راوجی اوش قبیلهویش هیچ نمینه و ای دیگه بیخی اروپایی دختر خود دست بچه میدام مگه به دانش خوب یک شکرش و و اوتن شانده و خوب شکر با و اون بالا و اون شنده شو و خوب چکر بده باز بادزو. نه او قسم کو نه یه قسم کن نه خودد اوور پایی بساس و نه این رواج قبیی بلکه اون چیزی که سنت پیغمبر صلی الله عليه وسلم هست چون همسر آیندی خود اختیار میکنه باید او را ببینه یکی دیگه خدا ببینن و بعد از او شان آاصل شود. و اینکه این حق دختر است باید نامزاد خدا ببینن و همچنان حق دیگه ای که دختر داره که باید اجازه گرفتش و وقتی که پدرش دختر خدا بر او بچه هم باید از دختر خود پرسان بکنه و گفته که با اذنها سیما دوها اجازش خاموشیست اگر ای دختر خاموش شد از شرم چیزه نگفت و اگر گرد زد خوب اگر نه که خاموشی هم اختیار کرد یعنی علامت رضاحت بود باید غیر از او گفت که نه یا گریان که چیخ زد یا گفت که نمی کنم نمیکنم چیز نمی پدر حق نداره که دختر د مخالف صنعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالف طریقی پیغمبر صلی الله و علیه و سلم است. و باز حق دیگه وقت نکاست که تا وقتی که دختر خودش نکای خودا در اجاب قبول دختر قبول لکنه باز درست جرس نمیشه دختر قبول بکنه اینجاست. چیست وقتی که اصلا در اسلام خطبه هست یعنی نامذاتیست مشاهد که قبول کرد باز از اون مرحله دیگهش که نکاح هست و در بین خدبه و نکاح نکای صحیح شرعی که دو, دو چیز فرض است ایجاب قبول و حضور دو نفر شاهد مسلمان این نکاح است اما این که خدبه ما میخانیم خدبه نمیخانیم ایگا پاک است او پاک است که مردم میگن در نکاح این دو چیز اساسی است دو نفر شاهد و ایجاب قبول اگر پیش از ایجاب قبول و دو نفر شاهد مثل که اول مثلا نامزد شد باز باز شنیخوری میکنه و بعد از شنیخوری تا وقت عروسی تا وقتی که نگاهی ازی بسته میشه وقتی که دختر دختر بر بچه حرام است بچه بر دختر حرام است خلوتش حرام است دز زدن به حرام است شیشترش با هم به تنهایی حرام است از این خاطر این ای ای ای ناروایی که آل فعلا یک بدعت خطرناکی که پیدا شده، و این مدسته ها جای گفتیم ما هی از گوش هم نمی گیرن که در شیرنی خوری نیمه نکا نیمه نکا در سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود ندانند یا ایچ نکا نیست یا مکمل نکا هست اما این که میگه نیواله آل یک نکا گهت میکنم مولایی سمی خیزه پدر آروس ایجاب قبول میکنه این این مود 9 است۸. پس قط پدر دختر ایجاب قبول میکنه. آ سبر ایجاب قبول شد با خود بشه و باز بلانی شده اونجا میخوایم؟ اجاب قبول هم درست نمی کنه نرفته و دختر قبول هم نکرده و چیزی نگفتم اگر امی ایجاب قبول و شاهدهن شد باز دیگه دگه کای دوم چیز ضرورت داره باز اون که اگر یاد جدا می شه خب باز اینجا فس گفته نمیشه باز اینجا باید طلاق رو بته انال این کای نیمه در شریعت اسلامی نیست چله پوشیدن خود طلاق برای برا پسرای مسلمان حرام است نه مرد مسلمان طلاق و ابریشم نراوا هست این عادت چله تبدیل کردن از این دست اون دوها برای افغان افغانا انتقال پیدا کرده پس یک مسلمان باید از چیزایی که عادت های دیگه و فرهنگ دیگه است از ایشنا بکنه یک یک بریدن پاک بسیاریش ای از بسیاریش که است این از عادت های خارجی هست در اسلام به نام ما چیز نداریم در اسلام ما به نام بازی چیز نداریم زد اسلام است زد شریعت پیامبرصلی الله است. و آله ارذوشان هستند پدرشان در جمله دهوسا میره و, و نامزاتان در جمله ها میره از خاطر ما باید از این چیزا آشنا بکنیم باز زمینه مسئله مسئله نکان در نکان که است فرق از بین تویانه و فرق از بین محر تویانه پیسه حرام و ناروا است که پدر و برادر و دختر دختر خودم میفروشند تویانه میگیره این فروش است و اگر ما سن دشمنی کی یک انسان آزاد میفروشه اما ما مقدار پولی که در وقت تا این میشه برای از طرف شوهر بر نامزو برای خانمش منایسه توفه و این پول که حقی از اوست ایره باز دختر پدر و مادرش پیش از به شخص نداره که اون تویانام میگیره باز ده شامل می کنه میکنه مجرا نمیشه گردن او کس که نکاح را بسته میکنن بستمه شد گردن شاهدایشان بستمه شد گردن او دش سفیدان بستمه شد چرا که حق ازو سیاست مسلمان نگرفتم تویانام را, را بهداروش به سن بر خود موتره سراچ خریدان در اسلام تویانه وجود نداشت دیگه در اسلام به چیزی که از همه اینکه ها وجود نداره دخترت هیون بود که تربیه کردی شیدبها و این چیزا میگیری ایگاپا رو مردم ساختن در اسلام جز دو طرفه وجود نداره چیزی رو داره که از دامات بیچاره بی با زور پول میگیرن باز برش میارن که من با تو یک لگ رو برم چون قورین خریدم و فرش خریدم چوب تو خریدم اون بیچاره قرضدار میکنه باز براش رو میخرن خود میدن تو گناگار شدی غیرات که داری از جیب خود بخر اگر مسلمان هستی بگونه برادر چیز برات میخرم و انا هم از پیشت میگیرم طریقی سیوز پیغمبری نکاشه باید بسته بکنم در محفل نکا اگر علم میگن که اگر کسی پیش از پیش برازو بچه خیل می که چلی سیر اگر برانج آوردی توی میتومد اگر نه اوندی برای توی نمیتون. اگر دو صد نفر را در اوتل از طرف ما خبر کردی توی میتونمت نکدی از این خاطره بسیاری علمه ها میگردیم از طرف دختر خیلی خبر شدی نرین چرا کی یه کرده؟ کردن. به گرفته از پیش از اونف کردن. مال ای چل سربه اینجا به زور گرفته. اگر به دلش باشه شلسیه مجبور میشه بشاره قرض میکنه میره از این خاطری خصب شد و از سر چیز میکنه این حق نداره چی هست خیدار نکاح چی است سنت پیغمبر صم سنت پیغمبر صم ولیمه هست ولیمه چی است ولیمه ظاهره است که داماد بردل خود بعد از نکاح با پخته میکنه وقتی که نکاح کرد عروس خدا بود اگر امکانات داشت پیغمبر صادق گفت که او لو ولو بشاط ولیمه بکن اگر چه گوسفند باشه اگر تو یکی دو شکن گوسفند از میکنم و هر کس خبر کرد خبر میکنه اما اینایی که عروس خیل سر از 200 300 نفر خوده تحمل میکنن این مخالف شریعت اسلامی است در شریعت اسلامی داماد ولیمه میکنه به توان خود اگر تو یک دونه گوسفند زیاد تو زیاد و خودش هر کس خبر کرد خبر میکنه کسی که خبر نکرد خبر نمیکنه و شر الطعام ولیمته ها یوضع علیها اغنیا و, و یترك اغنی الفقراء و در اینجا میگه بدترین نان ولیمه هی است ولیمه همون نان که در آروسی داماد بدل خود تهیه میکنن میگه بدترین نان ها نانه است که در اونجا اخنی ها دعوت شوند پولدارا دعوت شوند و فقره ها ترق شوند از خاطر ادامات مسلمان اینج سنت پیغمبرش سلام را در نظر خود بگیره که کهعقارب، دوستا، مردم فقیر هم بر از اونها یک سهمیه بدن. اینه که تنها با مغنیایی که کار داده اونمورا بخواید و فقیرها اومد یک دونه چوب و یک نفر چاخ لادر پیدا کنه، باوره بگه به دوران درو باز بشی که همین فقیر اومد رو بده وان. ها؟ در قام یک دونه لادر پیدا میشه. با حضورم چوب دمیرسش است و فقیر دوان است. اینا این کارو باید نکنه. این مخالف سنت پیغمبر صلی الله علیه و است. این حال جوان مسلمان وقتی که ولیمه میکنه اینجا کوشش بکنه که وقتی که ذرا خدا با تقواه گرفت کوشش بکنه که در مراسم نکاو و مجلس آروسیش مطابق سنت پیغمبر باشه تا که داخل اینجا خداوند برکت پرده در ازدواج از در آروسی ازو از این خاطر سنت است اگر او دعوت میکنه که ما شما بریم بریم اما بر جوان جوان مسلمان کوشش میکنه که اگر در اوتلام بگیره باید اونجا از کارای فحشا منکر، کمرهایی که سیاستراهایشانه عکاسی بکنه، ازی اجتناب بکنه در بین بین را در کمره ها گرفتن و باز اکسای ازو با فیشن و با رقص و با والد باز رو بخونه یکی میره به خونی دیگه کس میره اینا رواس مطلقا و اینوی قصد این نفر که مسلمان است این کار دیگه که باید بکنه وقتی این جوان مسلمان کوشش بکنه که از 20 تا 25 هزار پی که اگر این میره بس سازنده و دولکی و ترام میتن خنوارواس ای پیسی از ثمل تسلون یومایدن عن النعم در روز قیامت از نیمت های خداوند ترسان میشین و ای که تو مثلا بیست هزار بیست تا دوازده هزار پیسیت برای یک سازنده و رقاص میتی در اینجا خود روز قیامت تو محاسبه میشی اینجا در مجلس که باید در مجلس خدا را دعوت کنی در مجلس آروسیت پیغمبر خدا را دعوت کن در مجلس آروسیت اصحاب کرام را دعوت بکن در مجلس آروسیت علمای اسلام را دعوت بکن انسان با تقویر دعوت بکن آیا اون مجلس که ساز و رقص و گناه باشن در اونجا خدا پیغمبر خدا از ملائکه رحمت در اونجا حضور خواهد یافتن و یا اونجا مجلس یک تا که مجلس است؟ از مستر شام تا به صبح ببرکتیست و ب گنا حق اضافه بعضی ها هستن که تاووسو اوصاد در فیلم درخت ای کارا تیر کردن با سوبکی چاک داماد و آروس میبرن این یک بدعت منکر دیگه که با بازار 2000 میبرند از زیارت شاه شمشیران شاه شمشیران دستم تست امتیس اگنه کردز دو تا شمشیرم گردنک اردوش شما دوش شما توفانی در ها در دو تا نم گردن تانم بیپراند شما تا با تا صبح با جنایت گناه بدبختی ای عروس تا تا, دی... تا دی نشو که تا دیروز نامزات نداشتی ناموس نداشتی بیگم بودی امشب شاء میشه اول که ورده کت و نامزاتت بچکاکای تو آمدن پالوش عکس گرفت بچی مامای تو آمدن پالوش عکس گرفت معمارای تو آمدن پالوش عکس گرفت کلگی کل 카메라 های رنگارنگ اوتالدار و شاگردای اوتال کلگی کل اومدم باز بعد با از دا پیشونیات کاری ساعت 12 باشم تاپه دووسی زده شد موضوع من پیشوای شمشیر است استیرا اینیی بردا نه هروس دامات پیشوای شمشیر اید ای کدام کتاب است نه پیامبر سلام این کار را کرده، نا صحابه کرام این کار را کرده، و این دین مقدس اسلام است. از این خاطر جوان مسلمان سعی و تلاش می‌کنند که وقتی که آروسی می‌کنند، در آروسی خود رضایت خدا و پیغمبر خدا را مراعات میکنن در آروسی از او برکت میباشد، در اولادش برکت است، در خانمش برکت است، زندگی آینده‌اش سعادتمند است. در غیر از او وقتی که این ساز و برقص و بفر، کارای بد و بوی همجسمی، آدم مسلمان نباید همچین بکنن. شیطان گفت: انا منو من از بهترتر هستم ازی خاطر من از بهتر هستم اگه شام فاریس آرسی خدا کرد من باید شامل شام لندن برم بیگن بکرم برم. اخواست غرور میشن همون پیسی را که تو داری اگر یه جوان مسلمان باشه اگر پیسی زیاد داره بیست پنج هزار که تو برای یک سازنده میتی اگه او را بیری با بیست پنج بوزی آرد بگیری بیست پنج فامیل فقیر تو یک مردم از, از, از آرد بیغم میسازی و رحمت خداوند سر تو نازل میشه از این خاطر اینی مسائل است که ما شما را خداوند متعال جل, جل جلوه توفیق نصیب بکنم که در قسمت. تربیه اولاد و فامیل خود متوجه باشیم و همچنان در قسمت خداوند جوانای ما را باید خداوند توفیق نصیب بکنن تا ای که چی بکنن تا که مراسم آرزویی شنیده شود همیشه مطابق سنت و طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام بدهند سبحانك اللهم وبحمد